بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما تنك قرارك بوهم مرور ومراجعي بوهم من أسباب مذاكره فاحت هذه لك روزة وموها موارك رمزان هاس يك نامي هاس الشيخ ابن باز رحمه الله عبد العزيز ابن باز ابن باز يكاس أجداد الشيخ عبد العزيز ابن باز هاس شیخ باز درست که نابینا بوده ولی خب نام های خودش یا نسائح خودش یا کتاب های خودش رو املا میگفته به طلابش من فقط یک چیز فقط از شیخ باز میگم بقیه در زندگی نامش اون چیزی که اومده من کاری ندارم فقط یک مسئله میگم یک شخص نابینا من و شما با یک قیاس بکنیم خودمون رو شیخ باز رحمه الله نابینا بوده طلاب می اومدن پیشش. اول خودش می رفته پیش خودش خودش که پیش شیخ میشنیدند بعد از اون تا دیگه شیخ میشه و میاد تدریس میکنه طلاب مثلا می اومدن کتاب را میگرفتن می خوندن پیشش و شیخ تعلیخ میداده شرح میداده ما هستیم میبینیم خدا بهمون چش داده اسباب وسائل هم هست کسی نمیتونه بهانه بیاره کتاب ندارم موبایل هست کامپیوتر هست همه ادبات که ما دسترسی به کتاب داشته باشیم رو داریم شیخ هم باز با که نابینا بوده مثلا من یک کتاب میگم صحیح بخاری که ما صحیح داریم کتاب بعد از قرآن داریم اهل سنت گنجی که بعد از قرآن دارن دومین گنجشون از یادگارهای رسول الله صلی الله علیه وطمئن سخنانش سرمایشاتش از افعال و کردارش اون گنجی که اون اقوال افعال درش نهفته هست این صحیح بخاری هست که مبین قرآن من لتو من نزل الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہ و بلا این گنج من و شما چند بار باز کردیم چند بار خوندیم چقدر حب مون نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم حب مون امقاد بودی که مثلا ما بگیم که ما میخواهیم مثل رسول الله باشیم تو خدا ازش راضی بوده خدا او را دوست داشته ما میخوایم مثل رسول الله باشیم در نتیجه بخاری رو باز میکنیم که مثل رسول الله باشیم عبادتمون، نمازمون، روزمون الان ما این کتابا انتخاب کردیم برای چی؟ برای که عرضش و قدر رمضان را بدونیم تا اینکه بتونیم اونطوری که رسول الله عبادت میکردن در رمضان عبادت ببونیم من گفتم من میخوام یه چیزی بقیر یه گوشه از زندگی شیخه من باز بگم سهی بخاری گفتم یه گنجیه یه گنجیه که شاید من و شما ازش غافل بودیم مختصره رو نخوندیم دیگه صورتش رو خودش شیخ بنبار رحمه الله نزدیک به 20 بار له گفته شده 10 بار و گفته شده 20 بار فقط فتح الباری یک کتاب غیر از منهاج میگم سر شیخ مسلم و غیر فقط فتح الباری 17 بار اون چیزی که من یادم هست 17 بار فقط فتح الباری خونده خوندنش هم گفتم طلبه میومده میخونده و شیخ تصحیح میکرد اینجا ابن حجر اشتباه کرده اینجا میر حجر حرفش موافق اشعاعره هست موافق نمیدونه اصلا فرق هست اشتباه کرده و تعلیق میداره نسحی بخاریا نسحی بخاری فتح الباری شرح ابن حجر و صحیح بخاری چند جلد با چاپ‌های مختلف 20 جلد داریم 25 جلد داریم 18 جلد داریم 15 جلد داریم یک شص نابینا همت همت و از کجا مشعث میگیره چی سبب میشه که یک شخص این چنین همتی داشته باشه مثلا برای یک شخصی به از خواب ها میشه برای اینکه کرایه کشی بکنه میاد سرخی اومیشه و مسافرت اینجا به اونجا برای شب بخونه بر برگرده اش علاقه ای که به پول داره و یا اون علاقه هم نیاز اش علاقم نباشه نیازش اون احساس نیازش که زن و بچه داره خرج شکم دارن شب میشه از خوابش بزنه بر کرایه کشی بکنه خب همت بیاره دیگه احساس نیاز وف شیخه باز با این علم با این درجه یک به با یک بار دوباره هم اتفاق نمیکنه چندین بار این کتاب را میخونه به قصد طلب علم یک انگیزه هست در دونش ایجاد شده اون انگیزه چیه حب رسول الله صلی الله علیه و سلیم. حب دین خدا که میخواد دین خدا را اون چنان که الله به و بر پیامبرش وحی کرده بفهمه و بدونه و این علمه خدا میگه انما یفعل الله من عباده العلماء از خدا میتافته اینا هر کی از خدا داشته ترسه و محبت طلب علم عبادته و این طلب علم که عبادته عبادت اصل میگن تاریخ و معبت عبادت از عبده یعبد عبد. اون راهی که معبت شده کسی از... که خودشو زلیل کرده خار کرده در مقابل یه چیزی کسی خودشو کوچک کرده یک شخص عظیم میبینه سر فرو میاره جلوش چرا چون ازشی میترسه چون او را دوست داره نه که تنها حتی در کلم نگه ما برگم برگیشه الهاً برمی‌گردین الهاً و اصل خود هم من يعني خدا تالیف هم همین تعظیم از باب محبت یعنی خداوند الله برزشیده از اله مشتق از الوهیت الها معلوه یعنی معبوده محبوب قلبها هست یعنی کسی که ما او رو تعظیم میکنه از باب محبت وقتی که در قلب عظمت اومد و با محبت اومد شب میشه انسان خودش رو ذلیل بکنه سر بار سنگینی بر دوشش تحمل بکنه به خاطر رسیدن به اون حد ما اون چیزی که یعنی می مینولیم در زندگی بی هدفیه یعنی صبح از خواب بیدار می شیم، شب تا بیدار بشیم شب میخوابیم نماد میخونیم پنج وقت میخونیم رمضان هم میاد ولی اهداف روشن مثلا من این رمضان میاد چه هدفی برای خودم دارم توی رمضانی که داره میاد شاید من این نماز باشم شاید این نماز نباشه اولین چیزی که ما باید در این رمضان رسیدن این رمضان بهش فکر بکنیم که رمضانی که در جلومون هست اولین چیزی که ما باید از این رمزان بدونیم این که فردگارا شکر و صفاست از این که ما را زنده نگه داشتی یک رمضان دیگر زنده باشیم اولین چیز یک رمضان دیگر زنده باشیم چرا؟ سبحان الله رمضان رمضانی که درهای رحمت باز میشه درهای بهش باز میشه درهای جهنم بسته میشه هر شب کسانی از جهنم آزاد میشن رها میابند بهشتی میشن شاید یکی از این شبها شب ما بود جهنم و خدا بر من و شما حرام شد این نه توفیقه این نه سپاس نمیخواد شکر نمیخواد ما میگم اگر بدونیم قدریه چیز رو قسم بدونیم براش ارزش خال میشیم براش از اول برانه میریزیم ولی وقتی که قدرشو ندونیم از اول رمضان رمضان نایمده دنبال برنجیم دنبال آردیم شکریم تهیه اون لوازم از برای رنگین کردن سفره افطاریمون، سفره عبادتمون چی؟ چطور میخوام رنگین بکنیم؟ قرآن، ذکر، تدبر در قرآن، تفسیر قرآن، عبادت، تهجد، چه ای داریم؟ برای رسیدن به اون هدف، هدف چیه؟ آزاد شدن از جهنم. دیگه است. از حواس در مقابل بالاترین ارزشایی که خدا داده، هایی که تو رمضان گذاشته، آزاد شدن از جهنمه. چقدر از وقت خودمون دادیم برای این رمضانی که داریم علت کل ما انشالله خود این مسائل رو این مطالبی که هم دارم میگم بازم دوباره در مد خواهد من ولی اون چیزی که یعنی مهمه در قبل از خوندن این اون چیزی که مهمه نافیه یک عالمه حرف من نیست عالمی که گفتم سر کار باشه با صحیح بخاری و دیگر کتاب ها عالمی که دست پنج نم کرده با حدیث رسول الله صلی الله علیه و salam که هم داره همیشه میگه سخن که از دل بیاد بر دل منشینه. سخنش از دله حرفش دل نشینه و ذننیشینی حرفش هم بدونید ارزش حرفش بر برمیگرده به حدیث رسول فوحا وحا وحا فوحا. الله صلی الله علیه و آله که نقدر الله عمرنا کلمات سوها و حد ظهر الله خوشبخت میکنه کسی که سفن رسول الله رو میشنوه سفن ما رو میشنوه رسول الله میگه نقدر الله خوشبخت میکنه کسی که سفن رسول الله میشنوه میکنه فهمش میکنه و سپس اداش میکنه میره به دیگری میگه خدا خوشبخت میکنه ابن باز رحم الله و در این امت در این امت فضیلت رمضان به منافع گردید از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلس. و از باب نصیحت نصف امه درس فی برای امت بخاطر همین با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنه اقتدا به بخاری بعد با سلام علیکم شروع میکنه مثل اینکه نامه‌ای داره مینیویسه به تو به تک تک به عموم مسلمانان یعنی به تک تک من و شما نامه‌ای از طرف بن ای طرزن ای برادر این توصیه به تو این نصیحت به تو برای چه وقتی این رمضان که داره میاد هر رمضانی که خواهد آمد قبل از این این کتاب را بخور این کتاب هدف را برات مشخص می‌کنه <تصفيق> گفتم تا وقتی که ما هدف نداشته باشیم ارزش و قدر اون چیز را نمی‌دونیم عبادت‌ها میشن عب... عادت عبادت‌ها میشن عادت ما باید خودمون را از این عادت بیرون بیاریم و راهی جز فقه در دین و فهم در دین نیست و اینکه ما هم توفیق پیدا بکنیم توفیق رمضان یک رفت توفیق حسن عبادت در این ما و فقه و فهم اون چیزی که خدا از من خواسته برای رمضان یک توفیق دیگر حدیث معاویه داریم من یرد الله و بی خیرا یفقه و الله خیریت ما خواسته بتونیشه از بین بشر انتخابمون کرده برای چی فقه در این رمضانی که میاد من یارد الله به خیران یفقفه فل دی کسی که الله خیریت شبیهات فقده یعنی کسی که فقیه فهم داره خدا خیریتش یعنی خدا مننت نه بر تو گذاش زندموندی این رمضان و این که این رمضان را چطور اداب بکنیم؟ کنی دوتا توفیق نه سپاس میخواد شک میخواد اینها هدف را برای ما مشخص میکنه. خب بریم به خود کتاب شرح که شما میبینید شخ شیخ صالح سیمی هست بر این کتاب ذریع جلسه امشب داده ان شاء الله که بسم الله الرحمن الرحیم من عبد العزیز ابن عبد الله ابن باقن ابن عبدالعزیز ابن اقلبی و ابن دومی فرق میکنه به خاطر اینکه جد بالاتر از سومه باز یک جد شش و هفتم نشیت بنوازه بازه خاطر همین با الف اومده خودش اسمش عبدالعزیز ابن عبد الله حسث اسم پدرش عبد الله من يراه من المسلمين برای هر کسی که این متر رو خواهد دید یعنی این نامه از طرف شیخ بن باز به هر کسی که این نامه را خواهد خوند سلک الله بهی و بهم دعاء با دعا, دعا شروع کرد الله بهی و بهم سبیل اهل ایمان ای الله به من و شما توفیق راه رفتن و پا گذاشتن روی قرد پای اهل ایمان خدا توفیق بده توفیق این رو بهمون بده که مثل اهل ایمانی که بودن از بران، صدیقین و شهدا صالحین مثل اونها بریم. نکن یک هدف مشخص الله پیامبران را فرستاد ملائکه الذين هدى الله فبهداهم بکیه بگیه وقتی که خداوند قص را نقل میکنه ابراهیم و غیره به پیامبر اصلا میگه اولئک الذين هدایت الله اونا هدایت شدن فبهداهم یعنی به هدایت اونها راه اونها این سبحان الله من حکمت بسیار اشخاص جسور و گستاق و بیادب زیادن ما قبل از اینکه انسان بشه روزه هست که الان میخوام بکنیم. قبل از عبادت تربیت و ادب مهمه به خاطر همین الان به جای خودشش الله این بسطاق خواهد رو که وظیفه پیامبران غیر از تعلیم تزکیه و یوزکی هم تزکیه یعنی تربیت هم بوده یعنی فقط تعلیم نیست فقط اینکه من الان فضلت رمضان رو بدونم نیست این تو چو چو عمل بکنم مهمه بحث ابراهیم علیه السلام بود چون این سیاق اولات الدین حدا الله فکنوا جالشتونان در سوره الانعام در, در بحث بعد از خطاب ابراهیم بود ابراهیم این شخص بود شکن بود ابراهیم اومد رو خور کرد ابراهیم اومد جلوی مشتکین ایستاد ابراهیم به خاطر شکستن او اونو در آتش انداختن درست یانه میشنویم میشنویم کسانی که معترضان بر روش ابراهیم که ابراهیم حکیم نبود تو کارش وقتی که اومد سینه سفر کرد جلو مشکی اومد بطورا کرد این حکمت نبودش کفره به جای خودش این حرف کفره جای خودش این حرف زندگه هست اعتراض بر خدا هست که خدا از باب تعریف و تمجید از ابراهیم حرف تو یه گذاشت خدا داره متفه میکنه ستایش میتونه ابراهیم را درسته؟ درست و مونید میگه به ابراهیم درسته؟ این ابراهیم که امت درست یک امت بود بود حنیف بود خب مثلا یک شخصی پیدا میشه خودش جرأت میده میگه ابراهیم از مدنیت چیزی حالیش نبود یک شخص جامعه شناس نبود اگر جامعه شناس بود میومد همتای مردم میشد میومد مدنی میشد هم خوب مردم میشد هم خوب آنها میشد کجا میومد تا مردم راحتتر تر حرفشو بزنند نوح علیه السلام 950 سال بقامش بلند شد و نشسته دعوتون لیل و نهار شب روز ابراهیم هم اینطور مگه ابراهیم کم کم کاری داشت در دعوتش شب و روز داشت دعوت می‌داد نگه تو بودی که داری قضاوت می‌کنی ابراهیم تو ندیدی ابراهیم دعوت ابراهیم ندیدی قوم ابراهیم ندیدی چطور بر خودت به خودت اجازه میدی که بر پیامبری از پیامبران خدا قضاوت بکنی کی تو به تو اجازه داد جواب خدا رو چی خواهی داد؟ پیامبری که خدا فرستاده خداوند والله یستازی استفاء میکنه انتخاب میکنه از ملائکه و از بشر کسانی پیغمبر او باشن یعنی پیام آور او باشن که پیام را به ما برسونن ابراهیم پیامبری از پیامبران که وظیفه نبوت را داشت که دین خدا را ابلاغ بکنه بعد ما بیایم به این پیامبر فرستاده شده خدا و اعتراض بکنیم بگیم راهش اشتباه بود راه ما درست دره کفر شدیم واسه شد کفر قائل این وقتی این حرفو میزنی اعتراض میکنی که دیگه واضحه خدا بیاد انتخاب بکنه و ما بر خدا اعتراض بکنیم بگیم نه خدا کارش اشتباه بود اعتراض بر ابراهیم اعتراض بر خداونده کسی خودش اجازه بده بر پیامبری چه ابراهیم چه موسی چه عیسی چه اون کسی که میاد تو تفسیرش حالا بگم سریع بگم سیف صد که میاد مثلا تو تفسیرش بر موسی علیه السلام اعتراض میتونه میگه شخص تنخوب خشلی بود چون اومد اون شخص از بنی اسرائیل از چیز آل فرعون رو سیلی زد و کشت شخص جسوری بود فلان بود اعتراض بشي؟ انتخاب خداس خداورا انتخاب کرده براية فيام شه فيامي؟ فيام ولقد بعثنا في كل أمت رسولا نعبد الله واشتنبو الطغير ولقد بعثنا افصال مبعوث کردين يعني فرسالي كيف فرسال؟ الله فرسال ولقد بعثنا وضا فرسال الله فرساله توبر فرسالي خداورا اعتراض براية يعني عدم قناعتته بحكم الهيه وقالت الرحمن خدوانو میگه تلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيننا المنافقين میگه یهود داره میگه ایمان ندارن تا اینکه تو را حاکم در امر خودشان قرار دهند تلا و ربك قسم میگه خدوانو محمد بهار لا بين ثم لا في مما و يسلم ها کاملا تسلیم بش این ما ایمانه امتحان ایمانه اینجا هست که من میگم الفاظی که ما میبینیم خطاب این دعا هست این شخص میگم قدر منزلت راه پیغمبرارا درست ابتدای کتابش دعا میکنه که توفیق خدا به ما شما بده که رد پای اونها را بگیریم و پایمون را جای پای اونها بذاریم راه راه راه اونها باشید اونطوری که اونها بودن الله بی اصل شروع کرد آداب دعا هست انسان شروع الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان و وفقني واياهم للفت في السنه والقرآن امين الله توفیق فهمه ده سنت و قران به همون بده چرا قران بعد از سنت ورد بعض خاطر وزن اونجا سبيل أهل الإيمان اونجا في السنة والقرآن فقط از باب بحث سنت اول و قبل از قران فقط بحث ادبیاتی یعنی بعض اون جمله اون پاراگراف فقط حفظ بشه و الا شیخ البن باز بحث تقدیم سنت رو بر قرآن نداره که سنت مبین قرآن هر دو تا قرآن قران وحی است سنت وحی از طرف عبارت الله توفیق به من بدل می کنه که فهم در قرآن و سنت بهمون بده خدا عطا بکنه فهم من یورد الله به خیرا یفقهه فی الدین دین قران و سنت در میشه طاعتي الله توفيق بهم من القرآن وسنة رسوله يعني الله خير بيته منقص قال سلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام علیکم السلام علیکم هر دو تا جاهزه چه با نکره باشه چه با معرفه باشه السلام هر دو تا در قران مجید اینکه اول سلام اولی چون در ها این اینطوریه که میان سلام اولی معرفه باشه سلام آخری نکره باشه این امرش دستمون توش بازه. میتونیم بگیم سلام علیکم میتونیم بگیم السلام علیکم هر دو تا مفهوم دعا رو داره چه چه سلام وسیعی بهمون بده چه سلام بزرگی بهمون به بده چه بخواد معرفه باشه چه بخواد نكره باشه مهم اون معنا معنای سلامی که بحث سلامتی و سالم بودن از گناهان و بدی‌ها و ناپاکی‌ها هست که الله به من و شما عطا بکنه سلام علیکم و سلام الله بر شما و رحمت الله و برکاتش بر شماها اما بعد فهذه نصیحه الدين نقيها هذه این انفيحه فهذه نصیحه موجزه تتعلق بفضل صيام شهر رمضان وقيامه وفضل المسابقه فيه بالاعمال الصالحه فهذه نصيحه موجزه ان في خیلی خيركم عنده درباره دا فضیلت روزی ماه رمضان و قیامش روزه و قیام یعنی تهجدش وفضل المسابقه فيه بالاعمال الصالحه فضیلته مسابقه در سابقون السابقون تسابق در جيدر أعمال ليك الله مفقد صدقه بوشي مفقد قلوات القرآن بوشي, بوشي, بوشي. هر نونيكي مع بيان أحكام مهمة قد تخفى على بعض الناس با لأنهم روحة إن همراهشان هم روحة شام بادر روزها الدوف قال رحمه الله ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه أصحابه بمجيء شهر رمضان شهر رمضان صابت جادر رسول الله صلی الله علیه و سلم که خوشامد می گفت آمدن رمضان ناگورید مسئله که مهم من اینجا اشاره بهش بکنم بحث خوشامدگوییه یعنی شما برید تو اینترنت مثلا سرچ کنید اقوال علما در حکم خوشامدگویی یا تحنیات برای فرا رسیدن رمضان اومدن رمضان حکم صدا صد قول داریم یه میگه مستحبه یه قولی میگه مباح یه قول میگه بدعت اونهایی که میگن ان مستحب گفتن چون از باب عبادتها هست و رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابش بشارت اعتقد شهر رمضان ان خودش خوش آمد بيه بعضی هل دفتن که مضاحه چون بحث تعبدی نیست بلکه بحث عرفه و هر عرفه جوه ميگن خوش آمدی نیاز نیست مثلا جوه ميگن مرحبا جوه ميگن اهلا وسهلا این به آدات تقالیب برمیگرده هر جایی شاید برای خوش آمد یک جمله یک ادبیاتی داشته باشن و این ادبیات درش بازه هر کسی میتونه به اون نحوی که پسندیده میبینه خوش آمد بگه و عده دیگرم گفتم که خوش آمد بویی بلعته چون رسول الله صلی اللہ علیه وسلم به کسی خوش آمد نگفتن و الفاظی که اومده فقط بشارته نه خوش آمد فقط بشارت یعنی رسول الله صلی الله علیه و به با اصحابش بشارت داده که رمضان اومده نگفته که خوش اومد بهتون میگم گفت رمضان اومد ماه پر فضیلت و پر اومده اومده که خوش آمد بهتون میگه ناگورید تحفه تحفه تراز وقتی که میزارید حکم خوشامدگویی برای رمضان جواب نیست مثلا بنباز سوال میشه میگه حکم تهنئه برای یا حکم خوشامدگویی برای رمضان چیه میگه طیبه تهنئه طیبه ابن عثیمین رحم الله سوال بشه میگه طیبه جدا. کل خوبه بعضی دیگر میگه مباح، بعضی دیگر میگن بذعت. من اینو میخوام بر اساساً یک حکم شرعیه. من این مسئله رو فقط دارم اشاره میکنم از باب اینکه یک مسئله شرعی وقتی که انسان اختلاف رو میبینه و منشأ اختلاف و سرچشمش تحمل طرف مقابل براش اصوب میشه. دیگه اون شخص اون داعیه تحمیلی و دیکتاتوری وارد دعوت نمیشه. که حرف خودش رو کورسی می‌کشونه و بگه مثلا بپرس آلبانی گفته به قدری تو طرف مقابل شما طرف مقابل آلبانی مثلا به باز دارید بن قتیم دارید شیخ بن باز بن قتیم میگه مصحبه میگه خوبه اون میگه خیلی خوبه حالا من نمی‌دونم دقیقاً یادتون نیست شیخ آلبانی حکم قشمدی چی گفته ولی خب مثال دارم میگن، وقتی که ما اختلاف رو می‌دونیم در بعضی از مسائل بهمون تحمل میگه تحمل خیلی مهمه تحمل صاحب میشه خشم از فهم میشه طرف دیگر رو درد بکنی باش نر برخورد کنی مثلا چون در نظر بگیرید موسی علیه السلام موسی علیه السلام الله او را فرستاد به نزد کی؟ به نزد فرعون فرعون شخص زندید شخص که دعای خدایی میکرده کافر بود وقتی که موسی میاد نزد فرعون فرعون شروع میکنه به چی؟ علم نرد ما تو رو بزرگ نکردیم، فلانه، فلانه، وارد میشه با خشم. موسا هم میدونه، از قبل میگفت به بخواد گفت، ای خدا، من اونجا گناهی انجام دادم، شخصی رو کشتم، برم اونجا، من خطاکارم. خداوند گفت، تو و حارون برو، پیشش، فقولا له قولا لیه نبا او با گفتاره، نرمی سخن بگویی. طرف مقابل شخص خشبینی، انسان وقتی یک شخص خشبین یک رو میگیره، تا که تون باش بر خورد خود به خود انفعال در درونش ایجاد میشه درسته طبیعیه خب الان فرعون اومده با خشونت وارد میشه به موسی علیه السلام طبیعیه که موسی کوره خارج بشه ولی نشد یک شخص با کمال خردش درکش به فرعون رسید چون بر تحت پادشاهی نشسته و اقرار میکنه که اشتباه کرده موسی اقرار میکنه که اشتباه کرده بله من اشتباه کردم و من از بودم اقرار میکنه خیلی مهمه یعنی در دعوت انسان به تاхиرات خودش اعتراف بکنه به کودای خودش اعتراف بکنه موسی هست جلو پیغمبر خدا برمیزه شده ولی خب یه اشتباهی کرده من اشتباه کرده اونجایی که اون, اون شخصو کشت بعد چی میگه بعد موسی برای که الان وارد بشه حرفشو دعوتش رو برای به فرعون چی میگه تلک نعمت تمن نع تمنه علی چه نعمت منو بزرگ کردی جای شوب داره مننت گذاشتی این مننتی که بر سر من داری این نعمتی که از طرف تو به من رسیده و اونم از بچگی رو بزرگ کردی آیا سزاش اینه که بنی اسرائیل کل قوم و قبیلم را به اسارت و بردگی بگیری که تو را به طرف اثر ان بنی اسرائیل فرعون مات با خشوارد شد مننت گذاشت که من تو را بزرگ کردم بعد حرف رو گوش بدی پدره مثل پدر برای با خشوارد میشه چرا حرف من رو قبول نداریم موسی بدون این کنا بشه باید استدلال لطیف و نرم میگه بله درست من اشتباه کردم درست این نعمت و بر من ولی من یک نفر کل قومم رو تو اسیر کردی خار کردی برده خودت کردی بنده خودت کردی به جایی که خدا را بپرستن وادارش رو کردی که تو را بپرستن اینجا این داعیه هست این تحمدگره گفتم اینها هستن که خدا میگه الگو هست این الگوست خشم بود موسی علیه السلام تون خوب بود، آبادن، الله. خیر از این که یک شخص نرم، یک شخص خوش اخلاق، خوش برخورد، چیزی دیگه نمیتونی ببینی. خودش در این موقع، در این مقام، در این جایگاه، بله طبیعی عصبانی میشه. اون جایی که میاد، هارون جانشین خودش گذاشته بود، بعد میاد، و کرد برای بلع... بر اخیری جر رو ایلی، سر برادرش هارون را گرفت و کشان کشان کشید وقتی که دید قومش شد خشمش لله بود، نه برای دنیا. یک تقام دارن ای را میپرکدن می خش برای دین خدا بود همونطور که صحابه میلوکتر مومین آیشو میگه که خش دین نشد مگر اینکه حقی از حقوق خدا پایمال بشه خشدش بش برای دین خدا بود ولیکن من چندین بار اشاره کردم به این خضیه یک شخص خشدینه چطور باش برپرد بشه ادبیاتش خدا بهمون به گفته هر که ما کم بیاریم ما نمیتونیم ولی باید تلاش بکنیم تمرینه من اینو ازباب تمرین دارم میگم به یعنی اینجا بیان میکنم یعنی فقط ازباب تمرین ازباب باب نمونه ای خدا گذاشته به یک معجزه در قرآن هارون میاد برادرش سرشو میگیره حالا نگاه بکنید هارون چجوری میکنه سرشو گرفته ریشش گرفته ای برادر بر میگه ای برادر ریشه منو نه لا تاخذ باللحیهت انا راستنا سلام گفتنا میشن میگه ای برادر نخوندن اولین چیز عدم واکنش شخص خشن این عدم واکنش واکنششون نده ادبیات برخورد خیلی مهمه اونانی دعوتی دارن میگن بحث نصیحت اینجا اینجوری شد، و خصوصا مسائلی که توش اختلاف با خش برخورد کردن کارو ته درست نمیکنه بتر میکنه با خشونت برخورد کردن موسا هارون هست برادرش عصبانیه الان هارون دنوان یک پیامبر دیگر وظیفه‌شه که این پیامبر رو آروم بکنه پیامبر دیگر رو آروم بکنه که موسی علیه السلام. انفعال نقطه اول نقطه دوم اینکه خطاب نرم علیه الیتنا ببره یا نهعممه ای سر مادر چون بدون پدر بزرگ شدن. مادر بزرگ بود که برترنا ها بود فرام پدر رو را میگشت پر زندان هم زیر سایه یک مادر بزرگ شدن دو تا برادر. بیاد خاطراتش میداد خاطرات خوبی با هم دیگه داشتیم نظر یک جا اینجا که مثلا یک بل از من سرزد اگر منم به فرق اشتباه کردن نظر اشتباه کل اون خوبی ها و اون خوشی هایی که با هم داشتیم سفره ای که با هم سرش بودیم اون سفره را به هم بذریین. اون خوشی ها را از من ببرید. ن کنید یاد یکی انداختر رز خواهی کردن. گفت که ان ن الق عفهونیم منو ظریف دونستنعنی ذرخواهی در این میکنه من ضعیف بودم اونجا نتونستم حرف کیه؟ حرف هارو برادره نکنه اینا ادبیات یعنی مثلا شما وقتی که مثلا یک شخصی میریید مثلا در همین مثلا مثلا می بینیم 15 شخص صدقه میده نمیدونم خب ما اگر بخوام با انفعال وارد بشیم با خشونت وارد ب باشیم این عت این گمراههی کل و و اون شخصی که این باب عبادت و تقرب به خدا انجام میده، اون مناسبت داره. نه اینکه ما نگیم بدعته، نه اینکه ما اعتقاد نداشیم، ننشون نداشت بشه که بدعته. نه. من میگم محوه گفتن، روش گفتن، این روش گفتن رو از پیامبران خدا یاد بگیریم. چون ما امتی که باید همدیگر رو جمع بکنیم، امتی واحد با باشیم. نه امتی که متفرق بشیم، از هم جدا بشیم. دعوت دین اسلام به جمعه، نه به افتراق. درسته نه؟ همونطور که خداوند نه میکنه در قرآن از اینکه ما مثل مشرکین باشیم لدین نفرق و دین و مکن شیعه کلو حزبین بما لدهیم فرشون لدین فرق و دین و مکن شیعه هایی که دینش در متفرق شدن هم جدا شدن اینجا چیه نهی خداوند، بند اگه تو مثل اونها باشی مثل مشرکین هر کسی یک دیانتی یک روشی، یک فکری نه تو مثل اونها نباشی تو جمع کن مت را جمع کن آغوش بگیر گفتم این روش خیلی مهمه اینکه اون خودشون از ما نمیدونه به ما بحث کنه تو وهابی تو سلفی تو فلانی اون بذار با اون دیدگاهش ولی تو به چشمه نهایتش نگاه کن یک شخصی که داره اشتباه میکنه معصیت میکنه اما یک شخصی که جهنمیه چون بدعت انجام میده الان نمیدونم معاخذ میشه نه مسئول حساب کتاب مردم اون نیست شاید عذر داشته باشه شاید دجاست همونطور که رسول الله الله علیه و سلم به اصحابش عذر میداد حاص س من در بحث روز همیشه این پسسر رو میگن. حاطب نام نوژ به مشریکی چه موقع وقتی کلور خاست مک ف بکنه؟ مک رو خواست بکنه یه خیانته، یه جاسیی برای مشککی و دشمن اما رو به خطاب بلند میشه ششین رو ب یا صد الض برون و قفائ منافق. مننااف سرش رو بزنن میگه بذارید خودش به طرف خودش بذار. میگه اومد از طرف رسول الله ما فاعتها رده عن الاسلام من اسبب الردات و پوش به اسلام دادن این کار انجام ندادم من اسلامم و دوست دار. دارم دینم و دیس دارم شما همه اونجا دستی ی داشتید قوم خیشی داشتید که پناه مالتون بشه پناه جان فرزندانتون و قوم و عشیرتتون چه ولی من کسی نداشتم مالی هم نداشتم کسی حشمت اون رو بکنه و سر پناه خانواده‌ام اونجا داشته باشن خواستم خانواده خانواده‌امو نجات بدم بیا رسول الله <تصفيق> بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قب عمتي يا عمر وما أدراك إلا الله ولا على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لك مع سياد باين جوا يقول عمر النبي رضي الله بدر قال إن شبعنا ميجي شيء ميجي شاء خدانا قال لأهل بدر قال ب بإن شاء الرسول حقيقي يعني حقي. يعني خدابا بحقون هذا بخشيده وخذرين مشافي رحمه الله ميجي ميجي إن فعل حاضر غیر ممکن که شرکه اکبر باشه چون اگر شرکه اکبر بود خداوند او رو نمیبخشه فی شئ ان الله لا یغفر لشکبه و یغفر ما دون ذلك لما یشاء مسئله عذدادن خیلی مهمه وقتی که یک شخص خوشگل میاد روی یک مذهب و یک فکر دیگه تحمل طرف مقابل براش دشوار میشه غیر ممکن میشه فقط میخواد دروغ بکنه مثل یک بولدیزر فقط میخواد خراب بکنه هدف ما بنا هست نه خراب کردن دروس بنا و درست دروس بزارید صلی اللہ محمد محمد